سرمایه باد را روی پیشانیش بیشتر احساس می تند راه می رفت تا استوار حتی فکر دنبال کردنش را هم نکند. سنا به پیشوازش آمد. چقدر دیر کردین؟ آنان نگران شد. کجا هستین؟ این پشت. سنگ بزرگی را نشان داد که به قاعده یک اتاق بود. سرخ و خارا. پشت تخت سنگ پیچیدند. بقیه همانجا بودند. شوله نازک و سرخ آتش از اجاق سنگیشان بالا میجهید و بدنی کتری آب را که روی آن بود می لیسید. بوی خوش سوختن بوتهای خشک گون و خارخاسک در هوای سرد و محالود میپیچید. آنها آنا با چشم درخشان نگاهش کرد و گفت آفیت بشه، چقدر معتل شدی؟ اسمایل سعی کرد لبخند بزند. آنا که گونههایش بر اثر باد و آتش برافروخته و خوش رنگ شده بود به شوخی گفت. حالا دیدی هموم ما رو؟ تو شهر شما از این هموم پیدا نمیشه. وقتی رفتی براشون تعریف کن. را هم پرسید. چطور بود؟ خوشت اومد؟ از آسمون بارون از زمین ها بگرم. کجا همچین همونی پیدا میشه؟ همراهان دیگرش هم خندیدند. پیش آنها روی تخت سنگ صافی نشست. باد صدای قررش رود را می آورد و توده های عظیم عمر را جا به جا می کرد. سونا پیش سفورا نشست باد ناگهان تغییر مسیر داد و دود را به طرفش راند چشمایش سوخت و با دو دست شروع به پس زدن دود کرد و با خنده گفت ای بابا این دیگه چی میخواد؟ این صدا و خنده برای اسمایل گوش نواز آمد مثل صدای قلقل شادمان چشمه که از زیر سنگ میجوشد و جاری میشود روی زمین احساس کرد این صدا و خنده و آن منظره زیبا در وجودش سرریز شد آنها به چایی که برای اسماعیل ریخته بود اشاره کرد زودتر چایی تو بخور اینجا هوا سرده سونا سرش را پایین انداخته بود اما با دود و را همچنان به طرفش می برد استکان را برداشت چای کمرنگ بود اندکی به زردی می زد یکی از اسبهایی که آنجا بسته شده بود شیهه می کشید. صدایش میان سخراها پیچید دلش لرزید چای درون استکان لب پرزد به سنا نگاه کرد. سرش پایین بود. دیگر نمی خندید. باد کلاف دود و را به طرفش میبرد. احساس کرد چشمهایش خیس است. چیزی میان گریه و آبریزش چشم. دود می بهانه باشد. به سرفه افتاد. شانه تکان خورد ناگهان مه قلیزی از جایی ناشناخته به آنجا حجوم آورد. مه سفید بر سخره سرخ، سین سایید خود را بالا کشید. بوی نم و جلوک در فضا پیچید. صدای سیلاب محیب شد. اسماعیل احساس می کرد نزدیک است که زمین زیر پایش بلرزد و همه آن سخراها و سنگهای سرخ بر سرشان آوار شوند و آنها مطفون شوند. آنها باز هم گفت چایی تو سرد کردی بخور و خاصره ای را که برای همراهانش شروع کرده بود ادامه داد. نزدیک اولین قهوه خونه که رسیدم گفتم الان که آتیش بگیرم بسوزم مثل این بود که تو سینم تنور روشن کرده بودن از بس گرمم بود از بس آفتاب تابیده بود به سر و گردنم نفسم افتاده بود ته و بالا نمی اومد هر کار میکردم بالا نمی اومد خودمو به زور و زحمت رسوندم به در قهوخونه دستمو به دو طرف در گرفتم و گفتم آهای برادر قهوه چی؟ قربونت برم الهی یه دونه از اون رو باز کن به من بخورم آخه مردم از گرما خدا اموات اون قهوه‌چی رو رحمت کنه یکی از های زرد و باز کرد و داد به من نفهمیدم چطور یه شیشه کانادا رو خوردم مثل اینکه خواهر آب رو آتیش ریختن اینطور خونک شدم و نفسم بالا اومد حالا هر وقت میام اینجا اون قهوه‌چی رو دعا میکنم پس تو کی میخوای چایی تو بخوری پسر از جا بلند شد و خطاب به همراهانش گفت بجنبین بریم زود خدامونو بشوریم و بیایم به اسماعیل هم سفارش کرد همینجا باش تا ما برگردیم تو سفره نونم هست گروس نشد بخور آماده شدن بروند چایش را خورد این چای دیگه خوردن نداشت از دهن افتاده بود سونا ایستاده بود میخواست همراه آنها برود اسمایی سر بلند کرد سنا نگاهش را دزدید مه ناپدید شده بود اما ابرها بودند از روی صخرهها میساییدند و میگذشتند گاهی به نظر می رسید، این ابرها هستند که ایستادند و سخراها می گریزند یا فرو می ریزند. در همان حال استوار با عجله خودش را به پشت سخرایی جایی که آنها نشسته بودند رساند. زیپ شلوارش را پایین کشیده بود و می خواست آن پشت خود را خلاص کند. با دیدنشان دست پاچه شد. زیپش را نصف نیمه بالا کشید و گفت عجب بابا اینجا هم آدم است که وقتی نگاهش به سونا افتاد چشمهایش گشاد شد و ابروهایش بالا رفت و گفت چشمم روشن تو هم که اینجایی اسماعیل استکان را زمین گذاشت و از جا بلند شد استوار با دیدنش چشمهایش را بیشتر گشاد کرد و گفت تو هم که اینجایی پس بگو چرا نامه نوشته نشد سونا پشت مادرش آنا پناه گرفت اما اسوار بر خودش مسلط شد و مثل رئیس استنتاق کرد هر وقت میام خونتون نیست میشی برای چی از من فرار میکنی سفورا به جایش جواب داد نه جناب رئیس فرار نمیکنه هرچی باشه خونه ما خونه کت خدای دهه، خیلی کار داره امروزم به زحمت تونست بیاد آبگرم استوار جلوتر آمد و خطاب به سفورا گفت مثل اینکه تو راضی به نظر نمیای اگه راضی بودی دخترت بازی در نمیآورد سونا سرش را پایین انداخته بود و سعی میکرد پشت مادرش پنهان بماند وقتی سرخان راضیه من چی کارم؟ این حرفو به من نزن نزن این دختر پشتیبان داره که با من بازی میکنه آنا پا پیش گذاشت جناب رئیس به سلامتی این حرفو رو تو خونه سرخان بزنین حالا اگه اجازه بدیم بریم تو رئیس پاسکا این بار خطاب به آنا گفت نه صحبت اینجاست که این دختر از من چی دیده که ای امروز فردا میکنه ما در شما دنیا دیده این اگه بیاد خونه من از گل نازکتر بهش نمیگم روی این چشمام نگهش می‌دارم و پلکایش را بست و هر دو دستش را گذاشت روی چشمایش در همین فاصله اسمایل باقیمانده چایش را که دیگر حسابی از دهن افتاده بود روی خاک پاشید و از جا بلند شد و روبروی استوار ایستاد حالا اگه کسی نخواست جاش روی چشمای شما باشه باید کی رو ببینه؟ استوار از همان نزدیک نگاهش را دوخت به عمق چشمای او و گفت چاره ای نداره. بازم باید منو ببینه. و سیلی محکمی زد به صورت اسماعیل که صدای سکوت سنگ ها را شکست. اسماعیل دستش را روی صورتش گذاشت و نگاهش کرد. او سوار گفت، گفتم که چاره ای نداره، در هر صورت باید منو ببینه. و این بار سیلی محکم دیگری به سمتی که دست رویش نبود زد. باز هم صدا پیچید، صدای آنا درآمد دستت بشکن الهی چلاق بشیم مگه این بچه چی گفت؟ استوار نگاهش را دوخت به صورت آن و نزدیکش شد. باز هم پیشانیش عرق کرده بود. مثل ماری گرد خود چمبره زده بود و با سر و گردنی افراشته آماده ی حمله بود. پیش از اینکه بتواند دست روی آنا بلند کند، اسمایل جلو رفت و دو دستش را روی سینه فربه او گذاشت و به عقب حلش داد. استوار مثل گونی پر از پرتاب شد و پیش از سقوط سرش به صخرهی سرخی خورد که آنها در پناهش نشسته بودند. قلتید روی اجاق در حال خاموش شدن و آب کتری را دمر کرد روی سینهش. زنها ترسیدند. اسمایل ایستاده بود و با تردید نگاه می کرد. بلند نشد. اسمایل جلو رفت. خون از پس سر اصطوار بر سنگهای اجاق جاری بود و خاک سرخ آن را با ولع می مکید. پلکایش باز بود اما چشمهایش تاب برداشته بود. بگونه ای که هم به اسمایل نگاه می کرد و هم نمی کرد. گویا زبانش پیچ خورده و در گلویش گیر کرده بود. نفسش به زحمت بالا می صفورا سفورا آمد و به صورت استوار نگاه کرد و به اسماعیل گفت از اینجا فرار کن. اگه بمونی تیکه تیکت می کنن. پس شما چی؟ ما هم الان میریم. نگران نباش. پیچید پشت صخره و از شیبی که جا به جا سنگهای بزرگ و سرخ در آن بود بالا رفت. نفس نفس زنان از لابلای سنگها خود را به بالاترین نقطه رساند آنجا بادگیر بود، بوی بخار آب شور و گوگرد می آمد. صدای قررش رود بیشتر به گوش می رسید، چهار دیواری آب گرم و قهوه خانه های اطرافان در میان مه گم بود، اما حیهوی زن که آب تنی می کردند و صدای گریه بچه ها و فریاد مردها به گوش می رسید، یکی با صدای بلند دستور داد، در این لابلا این سنگا را رو بگردین، زود، زود، و اطراف نگاه کرد، خورشید آمده بود وسط آسمان و ابرها در حال پراکنده شدن بودند از آن سوی تپه که منتهی به رودخانه بود سرازیر شد شیب شنزار بود پس از مدتی به ساحل رود رسید سربازها و درجدارهای همراه استوار از جاده اصلی می‌آمدند او را دیده بودند و با صدای بلند فریاد میکشیدند و ایست میدادند. روبرویش رود خروشان بود و پشت سرش تپه بلند شنی با سنگها و سخراهای سرخ خارا راه پیش و پس بسته بود، صدای شلیک گلوله ای در کوم پیچید و افکارش را پریشان کرد. سربازی وسط جاده کنده زانو بر زمین زده بود و لوله تو را به سمت او نشانه گرفته بود. چند مرغ ماهی خار که در ساحل رود مشغول سید بودند، جیخ زنان بلند شدند و قیقاج و از آنجا دور شدند. دومین گلول زمانی شلیک شد که او خود را درون گردا پرتاب کرده بود و به مسیر اصلی رود میشد. با تلاش از چنگ گرداب رها شد و به جریان اصلی آب پیوست. سیلاب همان کوه کوه‌های بلند بالا دست بود، سرد و برنده. نفسش در سینه حبس شده بود و بالا نمی‌آمد. گرمای مطبوع آب گرم جای خود را به سرمای سیلاب و زربه های سنگ و شاخه های خشن درختان بید ساحل داده بود. بی اختیار دست و پا می‌زد. گاهی پنجه‌هایش را به شکاف سنگ یا شاخه درختی می گیرند و سر از آب بیرون می آورد و با ولع مثل تشنه‌ای که روزها بی آب مانده باشد هوا را درون سیننش میکشید. با دهان باز آن را میبلید و باز خودش را به دست سیلاب میسپرد تا هرچه بیشتر از آنجا دور شود. چند دقیقه بعد شبه لرزان پل را از پشت پک خیسش تشخیص داد. کم کم داشت نزدیک میشد. آنجا توقف نمی کرد نمیکرد میدانست که توانش دیگر تمام می شد و سیلاب او را با خود می برد. به اندام خود پیچ و تاب داد سعی کرد به طرف یکی از پایه های پل برود آن را در آغوش بگیرد دلش برای پل تنگ شده بود با خاطره خوشی از روی آن گذشته بود اما حالا در حالی که با مرگ دست و پنج نرم می کرد به آن نزدیک میشد. نمیخواست از آنجا بگذرد اما سیلاب گاهی او را کله پا زیر میکشید، میچلاند و میکوبید. تا جایی که می توانست دستهایش را به طرف پایه پل دراز کرد انگشتانش رعش گرفته بودند برای گرفتن پایه پل کش آمده بودند و میلرزیدند. اما سیلاب اجازه نداد دستش به پایه پل برسد با خشونت و فشار او را از زیر پل گذراند و چند بار پیچاند و پشت رو کرد تنها کاری که می بکند این بود که در فرصتهای اندک با سرعت نفس بکشد. چندان تلاش نمی کرد. کمی بعد احساس کرد به جای آرامی رسیده است. دیگر به سنگ و زمین کوبیده نمی شود. سیلاب خزیده بود به زیر سخرها و قسمتی از آب پس از برخورد به کوه، باز برمیگشت و تاپ میخورد و دوباره در بستر اصلی رو جاری می شود. همراه آب کشیده شد زیر سخره و توانست انگشتانش را درون فرو های سنگ بزرگی بهیراند و همراه آب بیرون نیاید. کم کم خودش را به هاشیه کشاند و از ضرب و حجوم در اما ماند. سر و را از آب بیرون آورده بود و نفس نفس میزد. و بعضی وقتها هم آبی را که بلیده بود بیرون می ریخت. نظم تنفسش به هم خورده بود مرتب صرفه می کرد و قطرهای آب از گوشه چشمهایش جاری می شد. دیگر نمی خواست به چنگ امواج بیفتد چشمش ترسیده بود سرمای مرگ زیر پوستش نفوذ کرده بود استخانهایش تیر میکشیدند و سرش دیج میرفت. صداهایی در اطرافش شنید سر برگردند و به بالای رود نگاه کرد سربازها به پل رسیده بودند چند نفرشان خم شده بودند و اطراف پل را نگاه میکردند. در اطراف و روی پل گشتی زدند و برگشتند و رفتند در یک لحظه حس خوشایندی به او دست داد و نفس راحتی کشید و با خود گفت اگه زیر پل بودم؟ خواست به آسمان نگاه کند اما بالای سرش تخت سنگ بزرگی بود که از شکاف آن قطره آب روی صورتش میریخت. سربازها رفته بودند، دیگر صدایشان شنیده نمیشد. اما او همچنان به آن پل چوبی نیم و ان چشم دوخته بود که دو سوی رودخانه وحشی و خروشان را به هم وصل میکرد. جزان پل هیچ چشمانداز آشنایی برایش نمانده بود. پل او را به یاد زندگی و خاطراتش می انداخت. زمانی که از رویان میگذشت. تعادلش به هم می‌خورد کسی که صدایش آشنا و آرام آرامبخش بود از پشت فریاد می‌زد "باید جلو بری" و او رفته بود در همان حال پل چوبی شروع به تکان خوردن کرد پلک‌های ملتهبش را چند بار باز بسته کرد کسی قدم روی پل گذاشته بود کم کم وارد فضای دید او میشد دلش تپیدن گرفت چند دقیقه بعد زنی نمایان شد خوب که دقت کرد آنها را شناخت آهسته روی پل قدم میگذاشت و از ساحل سرخ به طرف چمنزار میرفت پشت سرش زنهای دیگر هم ظاهر شدند آخر سر سونا را دید که از روی پل میگذشت برخلاف آمدن که با بگو و بخند از پل میگذشتند حالا همه با سرهای فرو افتاده شبیه سوگوارانی که از تشیه جنازه برمیگردند ساکد و خاموش راه خود را ته میکردند و از دید او خارج میشدند سناگهانی برمیگشت و به عقب نگاه میکرد. زمانی چشم به ساحل رود می‌دوخت. برخلاف دیگران که با سرهای فرو افتاده به راهشان ادامه میدادند، او سنگین بود. دشوار پیش میرفت. انگار چیزی جا گذاشته بود که همچنان چشمش به دنبالش بود. اسماعیل میخواست خود را از زیر صخرة بیرون بکشد و فریاد بزند و بگوید: صبر کنین، صبر کنین. من اینجام، الان میرسم. نرین اما ساکت ماند. صدایش تنها در فضای سینه و سرش پیچید و کسی نشنید کمی خود را از پناه صخر بیرون کشید تا بتواند رفتنشان را تماشا کند آنها از پل عبور کردند چمنزار ساحل رود را هم پشت سر گذاشتند و به سربالایی رسیدند همانجا که جاده خاکی مثل ریسمان باریک به شکل کج و معوج خود را از شیب تند بالا می کشید. آرام آرام می رفتند. در آن میان آنها سخت راه میرفت. هر دو دستش را به پشت زده بود و با کمری که اندکی به سوی خاک خم شده بود بالا میرفت. زودتر از بقیه خسته میشد. آن وقت می ایستاد کمر راست میکرد. برمیگشت نگاهی به مسیر طی شده می انداخت و دوباره راه میافتاد. مدتی بعد به نوک تپه رسیدند. همان جایی که کوره راه خاکی ناگهان سرازیه شده بود. پیش از آن که از چش پنهان شدند. همشان رو به رودخانه و سخراهای سرخ سرخاب گرم نشستند. احتمالا خستگی سربالایی را در میکردند. این آخرین فرصتی بود که اسماعیل می ببیندشان. استراحتشان چند دقیقه بیشتر طول نکشید. از آنجا بلند شدند و خاک لباسشان را تکاندند و یکی یکی ناپدید شدند. لحظه ای بعد آخرین نفر برگشت و باز هم به سوی رودخانه نگاه کرد. نگاهش انگار لابلای سخراهای سرخ خارا گیر کرده بود مثل گوشه پیراهنی که به بوته خار یا ساخهی گیر کند و کشیده شود او هم نگاهش گیر کرده بود و کنده نمیشد. به همان نقطه ای نگاه می کرد که اسمایل بود چند لحظه بعد او هم رفت و نابدید شد باری که راه خاکی از رهگذرانش خالی ماند، حالا او بود آن رود وحشی و خروشان و درره عمیق که به نظرش دو سوی آن رفته رفته تنگ میشد و به هم می رسید و استخان او, او را خورد میکرد. اندوه بر شانههایش آوار شد. خروش سرکش رود برایش به منزله شیون بلندی بود. گویا کسی گریبان چاک میکرد و ناله سر سرمیداد تا او هم احساس کند که میل به نالیدن دارد و گریه غریبانه. به آسمان چشم دوخت که حال صاف و نیلی بود با تعداد سرساام آور ذرات در همروندهی سفید که لابلای پلکهای های نیمه بستهش آنها را میدید. کبوتری وحشی با شتاب از جنوب پیدا شد. با شتاب بال زد و با سرعت گذشت و خط کبودی از خود بر سینه آسمان بر جا گذاشت و در میان انبوه ابرهای تیره بالای کوهای شمال رودخانه گم شد. آفتاب پرست چاقی با کاهلی خود را به صخره سرخ چسبانده بود و خورشید بر تنش می‌تابید. به رنگ سخره بود. با لذت تن خود را به آفتاب سپرده بود و چرت میزد هوای آفتاب پرس شدن کرد تا مثل آن حیوان بیخیال و سنگواره تن سرد و لباس های و تلیز خود را به نوازش های آفتاب تسلیم کند تا خون گرم به قلبش جاری شود اما چنین نبود باید تا غروب آفتاب و هنگام گرگ و میش زیران سخره آبچکان میماند و بعد از تاریکی بیرون میامد و تا آن زمان هنوز زیاد مانده بود. باید حوصله می کرد پلکایش را روی هم گذاشت و دستهایش را محکم به شکاف صخره بند کرد و مثل انکبوت بی حرکت ماند رفته رفته چندین بار پلکایش گرم شدند سرش پایین افتاد و چانهش مماس سینه شد گاهی احساس می کرد خوابیده و حتی خواب می بیند. اما همیشه هیاهوی رودخانه توی گوشش بود آن را می شنید قسمتی از پاهایش که در تماس با امواج رود بود کرخ شده بود پشههای ریز و سیاه روی صورتش مینشستند و او هر بار با تکان دادن محکم سر آنها را می‌تاراند وقتی دستهایش خسته میشد، به یکی استراحت می‌داد و با دست دیگر خود را به صخر میآویخت. به همان حال آنقدر ماند تا خورشید رفت ابرهایی که تا پیش از آن سفید یا سرخ و بنفش بودند اول خاکستری سپس تیره و بعد کبود و سیاه شدند آهسته از زیر صخره بیرون آمد اما قبل از آن باید از های رود عبور میکرد و ناگزیر باز هم خیس میشد با احتیاط خودش را از چنگ رود رهانید و به ساحل رساند رود تیره به نظر میرسید و امواج خروشانش مثل چنگال سفید حیوانی در رنده در تاریکی میدرخشید از ساحل رود دور شد و خودش را به جاده منتهی به آب گرم رساند ایستاد و به اطراف نگاه کرد نمی توانست به بنفش دره برود، مأموران حتما در کمینش بودند، پایین دست رود هم دشت صافی بود که احتمالا آبادی های فراوان داشت، صلاح نبود آن طرف برود بالا دست را انتخاب کرد که کوهستان ابوس و مهالود بود و رود از دل آن کوه های بلند و پربرف میجوشید و می آمد.